برای گشایش بخت جوانان چه دعاهایی خوانده شود یکی از دعاهایی که دعاهای پرآنی هست مربوط به سوره یاسین میشه هم کسان اون جوان هم خود جوان خصوصا سوره یاسین رو حداقل یه بار در روز بخونه ان مشکلش حل میشه Done.